سید جعفر آمد و این بار سیقه عقد را در حالی میخواند که من قرآن بزرگ خانم جون را در دست داشتم. هایم مثل باران می و دستهایم مثل بچه ها می لرزید. بله این بارم از عمق جان بود. ده سال گذشته بود و این بار دیگر بهای گنجی را که به دست می آوردم پرداخته بودم. کابوس زندگیم تمام شده بود. من دوباره همسر مردی می شدم که هیچ وقت از او جدا نشده بودم. وقتی مادرم همراه امیر دستم رو توی دست محمد گذاشت گفت کاش باباشو خانم جون هم الان بودن و با بغز ادامه داد این بار دیگه برای همیشه سپردمش دست شما. من با یاداوری پدرم و خانم جون بی اختیار سرم رو روی سینه محمد گذاشتم و گریه کردم. روی سینه ستبری که پناه تن خسته و رنجورم بود و آغوشی که بعد از این همه سال هنوز گرمایش برایم آشنا بود. محمد همونطور که مرا توی بقلش نگه داشته بود در حالی که از مادر و امیر تشکر می کرد پرسید. چرا همه گریه می مهنس تقصیر توی عشق همه رو درآوردی و من تازه فهمیدم که امیر هم گریه می کند محمد به خواهی می کرد مادر من نمی خواستم این طوری و با همچین شرایطی امیر حرفش را قطع کرد و با لحن شوخ همیشه گیش گفت عیبی نداره بله هر وقت سر آدم بیا تازه است حالا اگه می بری زود با شب شد مادر با تحجب پرسید. کجا؟ امیر جواب داد. نمیدونم. مثل اینکه که میخوام برم مسافره. در حالی که عشقهایم را پاک می کردم، پرسان به محمد نگاه کردم. لبخندی زد و خم شد. صورت مادر را بوسید و گفت. یه مسافرات دو سه روزه. با اجازه شما میریم و برمیگردیم. بعد رو به من کرد و پرسید. نیمی دستش را دراز کرد. حاضر بودم حتی جهنم هم با او بروم. دیگر بی او زندگی معنا نداشت. دستش را گرفتم که مادر یادآوری کرد، نمیخوای با خود چیزی ببری؟" من انگار در خواب راه میرفتم همراه مادر چمدان کوچکی بستم و راه افتادم. سه جعفر دعای خیری کرد و خدافزایی بعد مادرم با قرآنی در دست چلو آمد. باز هر دو به گریه افتادیم. وقتی امیر برای بوسیدن در آغوشم گرفت در حالی که خودش هم اشکی توی چشمش بود، سیره گوشم گفت میشه بپرسم حالا دیگه برای چی زار میزنی؟ خنده از دل وجودم را پر کرد. راست میگفت. عشق شده بود قرین تمام لحظات خوش و تلخ زندگیم هنوز باور نمی کردم. این من بودم دوباره کنار او کجا می رفت مهم نبود مهم این بود که با من می رفت. شب سیاه بالاخره سهر شده بود و من این بار از خوشحالی ساکت بودم فقط درد نیست که گاهی چاری جز سکوت برای آن نیست خوشبختی زیاد هم بعضی وقتها آدم را ساکت می کند وقتی سوار ماشین شدم مادر دمه در همچنان گریه میکرد و سه جفر دعا می و ما رو نگاه میکرد. امیر بار دیگر صورتم را بوسید و گفت خوشبخت باشی فسقلی اخمو محمد حواست بهش باشه فعلا همین یکی واسه مادرمون مونده محمد خندان پرسید مگه تو حساب نیستی؟ چرا؟ ولی نه تعتقاریم نه یکی دونه بریم که ما هم بریم به بیمارستانمون برسیم هر دو با هم پرسیدیم بیمارستان؟ آره دیگه الان که برم به سرعی بگم چی شده دوباره باید ببرمش سیر سر رو هر خندان از هم جدا شدیم محمد حرکت کرد این خوشبختی ناگهانی آنقدر غیر منتظره بود که بدنم انگار گنجایش تحمل آن همه شادی را نداشت. در آن تابستانی همه جا به نظرم زیبا بود و خیابانها قشنگ و مردم شد. از دیدنش سیر نمی شدم. در حالی که به ستون در تکیه داده بودم رو به محمد نشسته بودم و همه وجودم نگاه بود. یک لحظه رویش را به سمت من کرد. با همان نگاه پر از مهر و در عین حال مقتدر با همان لبخند گرم که به من این حس شیرین را میداد که توی این دنیا و در کنار او هیچ کس هیچ قدرتی نسبت به من ندارد. امنیت شیرینی که هر جانی با آن عمر دوباره پیدا میکند. کیمیا عشق واقعی که هستی آدم را میسوزاند و از نو صاحب زندگی میکند. دستم را گرفت و زیر دستش روی دنده گذاشت و آرام شروع به صحبت کرد. صدایش قشنگترین صدای دنیا بود و من باز همان مهناز ده سال پیش آشق این صدا. منتها این بار نه تنها آشق آهنگ صدا، آشق تک تک کلماتی بودم که با همه وجود می شنیدم. صدای آرام، گرم، مردانه، نوازشگر مهربان نمیدونم واقعا این هشت سال رنج لازم بود یا نه نمیدونم اسمش رو چی بذارم قسمت تقدیر یا شاید هم تعدیب. نمیدونم تقصیر کدوممون بیشتر بود دیگه برام مهم هم نیست که بدونم چون باید از این دیگه نمی نمیخوام در موردش حرف بزنم به نظرم این هشت سال تاوان برای هر دومون کافی باشه و برای اینکه مجازاتی ابدی نبود، فقط باید خدا رو شکر کنیم. فقط میخوام اینو بدونی که من نبه دروغ گفتم، نزیر قولم زدم، نخواستم نامردی کنم. اگه تو اون هشت سال پیشم فقط یک قدم به طرف من برداشته بودی، اگه نصفم نه، فقط یک کلمه این حرف رو که امروز گفتی اون زمان حتی بعد از طلاق گفته بودی، من برمیگشتم. ولی تو فقط بازی کردی و با سکوت موافقت تو با فکر و تصمیمه من نشون دادی بعد از رفتنم خیلی صبر کردم منتظری یه پیغام، یه حرف، یه تماس بودم ولی تو هیچی نگفتی، هیچ کاری نکردی نه جواب مادرینا رو دادی، نه جواب تماسی زری و فاطمه رو و من مطمئن شدم که فکرم درست بوده باورم نمی تو قبول کنی طلاق بگیری ولی مهناز فقط تو بچه نبودی مگه من چند سالم بود؟ چقدر تجربه داشتم؟ چی از زندگی می بعد از تو همیشه فکر می کردم کجا یه کارم اشتباه بوده؟ کجا خطا کردم؟ توی انتخابم یا رفتار یا افکارم؟ اگه تو به قول خودت از شونزه سالگی منو توی زندگیت حس کردی من از وقتی یه پسر هشت نه ساله بودم دوست داشتم مهناز تو مرد نیستی که حرف منو بفهمی تو نمیدونی اون دو سالی که من با تو بودم برای یه مرد چه سنیه فکر نکن آسون از جسمت گذشتم من نه یه مرد جا افتاده بودم نه یه مرتاز نه یه آدم مریض در اوج جوونی فقط به خاطر ارزشی که تو وجود تو، عشق تو برام داشت صبر کردم تو هیچ وقت نفهمیدی چی رو توی وجود من شکستی و من چه زجری کشیدم وقتی از دستت دادم شک آنچه ای این که اون جسمی که من یه روز حالا ممکنه ساکت شد انگار او هنوز از گفتنش رنج میکشید و من از شنیدنش چند لحظه صبر کرد بعد نفس عمیقی کشید و ادامه داد بعد از اون موضوع آقا جون منو تحت فشار گذاشت که سپردی رو که برام داده پس میگیره و من رو تقبل نمیکنه. تنها باری که من توی روی خونووادم ایستادم اون بار بود که مجبور شدم از خونووادم برای یه مدت ببرم. هیچ میدونی که دقیقا یه سال منو از درس عقب انداختی؟ وقتی با اون حال و روز از ایران رفتم تا یه سال مغزم درست کار نمیکرد. توی اون محیط غریب و خشک و آشنا با اون وحث روحی. یه موقع به خودم اومدم که دیدم اگه تکون نخورم یه مریض روحی تمام و کمالم و اون وقت بود که باز. کتابمو درس نجاتم داد همونایی که تو ازش متنفر بودی بعد کم کم به خودم اومدم برای انتقامم شده سعی کردم ازت متنفر باشم. بهت دروغ نمیگم حتی سعی کردم عاشق باشم و یه نفر علاقه پیدا کنم ولی فایده نداشت. من توی وجود دیگران دنبال تو میگشتم برای همین خودم زود سرخورده میشدم شدم و طرف مقابل آسی میشد. بعد از دو سه سال. دیدم فایده نداره نه فراموش میشی نه طرف نفرت به خودم قبولوندم خیلی خوب من ازت رنجیدم، ولی متنفر نیستم پس تو برام یه خاطره باش و جاد توی قلبم و خواستم برم دنبال زندگی مثل اکثریت آدمایی که میبینی و دارن زندگی میکنه، ولی بازم نشد یه بار چشمامو بستم و خودمو مجبور کردم و تا آستانه ی هم رفتم ولی نتونستم در نهایت دیدم نمیتونم. با همه یه زجری که این فکر برام داشت بالاخره تصمیم گرفتم برگردم تا یه جوری مطمئن بشم تو ازدواج کردی و از این بند خودممو نجات بدم. ولی اصلا قصد نداشتم سراغ امیر بیام. تصمیمم این بود که یه جوری دورا دور خبردار بشم که اونطوری شد و امیر اتفاقی ما رو دید و هنوز من توی هیجان دیدن دوباره امیر بودم که تو اومدی. وقتی دیدمت مخصوصا موقعی که اونطوری از حال رفتی فهمیدم همه ی سعیم برای اینکه تو رو فراموش کنم و مربوط به گذشتم باشی بی خود بود. اینکه تنها بودی برام یه نحمت بینهایت بود و تازه میفهمیدم که غیر از این بود و تنها نبودی چقدر داغون می شدم. ولی از رفتارت سر نمی‌آوردم. نمی, نمی بفهمی توی وجود من چه خبره؟ نمی خواستم باز اشتباه کنم و تو از تو مطمئن نشدم. تو سر از احوالم در بیاری. ولی تو فقط فرار می کردی. به من حتی امون نمیدادی بعد هشت سال بفهمم که تو چه فرق گردی مخصوصا اون روز توی ماشین با اون فریادات و نگاه های و پر از نفرت احساس کردم دیگه هیچ وقت گذشته گذاشته بر من دنبال چیزی توی وجود تو می گردم که دیگه اصلا وجود نداره تصمیم گرفتم برگردم مطمئن شدم اینی که تو حالا هستی رو دیگه نمیتونم دوست داشته باشم. اون مهنازی که من عاشقش بودم، حالا زنی سرکش و غریبه بود که دیگه نمیشناختم و تصمیم داشتم هرچه زودتر برم که اون روز ناگهانی مجبور شدم بیام دنبالت. اون وقت بود که دوباره وقتی از پشت سرنگاه هم به افتاد که زانو زده بودی و با بچه مریم حرف میزدی، باز همون حس سرکش برگشت. وقتی دیدم از اینکه درد داری کلافه میشم و این حسیه که من به هیچکس نتونستم داشته باشم یا وقتی که سر خاک حالت بد شده بود از دیدن اشکاد درست مثل گذشته کلافه شدم یا وقتی سهر رو بهت دادم یه لحظه از فکر اینکه اون میتونست بچهی خود باشه؟ گذشته با هم شدت برام زنده شد و باز دیدم نمیتونم قدرت ندارم برم یا باید مال من بشی، یا ازت متنفر بشم تا تکلیفم با خودم معلوم بشه و بتونم برم. محناز نمیخوام اذیتت کنم. تمام این حرفایی که میزنم فقط بر اینه که دانم میخواد همه چیو بدونی تا بفهمی به من هم توی این چند سال چی گذشته. توی این مدت خیلی سعی کردم به زن دیگه ای علاقه پیدا کنم. یا دیگران به من علاقه پیدا کردن. ولی این حس تملک رو نسبت به هیچ کس نتونستم داشته باشم. این حس تعلق خاطر کامل و تملک رو که نهایت رضایت هر مردی از احساسش به یه زن میشه من تنها به تو داشتم. اون روز که دم خونه امیرینا مستاصل برگشتی و اونجوری نگاهم کردی، قلبم انگار از جا کنده شد. حالتی که به غیر از تو در مورد هیچ کس نتونستم داشته باشم. توی چند روز بعدی هرچی توی احوال تو دقیق شدم، دیدم تو حتی از نگاه کردنم فرار میکنی. تا اینکه دیشب یه چشمامو باز کردم و دیدم داری یه چیزی میندازی چشماتی چشمات یک آنوچ تو باز کرد دیشب تصمیم گرفتم به هر قیمتی شده وادارت کنم حرف بزنی حتی اگه اون چه میگی چیزی باشه که نخوام بشنوم دیشب تو راه رفتم و فکر کردم که یعنی واقعیت احساس تو اونه که من توی نگاه دیشب دیدم یا رفتاره دیگه صبح وقتی دیدم نیستی اول مردد شدم ولی بعد فکر کردم اینطوری بهتره حقیقت رو به امیر گفتم و بعد با مادر صحبت کردم و گفتم که میخوام با حرف بزنم خودم مادر رو آوردم خونه و بعد رفتم یکی دو ساعت نشستم. فکر کردم تا هم به اعصاب خودم مسلط بشم هم برای هرچی که ممکنه تو بگی آماده باشم خودم برای همه چیز آماده کردم غیر از اون تو گفتی لبخندی شیرین زد و ادامه داد امروز وقتی توی اتاقت چشمم به اون وزقیل خورد و بعد حرف و دو آخر سر گردم بندت که دیدم هنوز توی گردنته دلم میخواست بقلت کنم و سرتا و پا تو قرق بوسه کنم. این اون مهنازی بود که آشقش بودم. خانم خوشگل من. من نه دروغ گفتم نزیر قولام زدم نخواستم نامردی کنم و تو رو آزار بدم. فقط از مهناز همیشه خود مهناز رو میخوام. صاف پاک. بی خلقش و دل و که البته فهمید و با شعور نه نازه حسود و لجوج و سرکش و ببخشید کم عقل تو تا حالا ماه حسود و لجبز دیدی؟ او حرف میزد و من در دریای عشق بی پایان کلام و وجودش گم می شدم و فکر می کردم. خدایا دلها چه زجر احمقانهی به خود تحمیل می کنند. فقط در اثر یک سوه تفاهم قروری کاذب و لچبازی و نفهمی بیهوده چه بسا قلب که با حسرت زندگی کرد و ناکام از این دنیا رفتند فقط به خاطر یک حماقت یا ترس از حقارت یا نداشتن جسارت ابراز واقعیت یا حفظ قروری احمقانه ما هر دو هشت سال قربانی یک اشتباه یک خامی، یک سوء تفاهم و عدم درک درست شده بودیم و با حفظ غروری نابهجا افکار خود را اعمال دیگری دانسته بودیم و خدایا اگر تو کمک نکرده بودی شاید این کابوس لعنتی دائمی بود و ما هم جزو همان بیچارگانی بودیم که با زجر زندگی میکنند و با حسرت از این دنیا میروند فکر میکردم آن هشت سال خواب وحشتناکی بوده که تمام شده و من هیچ وقت از محمد جدا نبودم عشق معجون غریبی است همان قدر که میتواند کشنده باشد قادر است اکسیر زندگی هم باشد و همان قدر که زجر مردن از عشق نفس بر و خورد کننده است خونه گرمی که از آن توی رکهای آدم جاری میشود زندگی دوباره است که جوان و پیر نمیشناسد و قلب آدم را در هر سنی خداگاه در برابر خداوندی که خالق عشق است خاضع میکند و شاگرد خدایی که در چشم به هم زدنی میتواند بدبختی ها را خوشبختی کند و زندگی ها را زیر و رو برای چند لحظه چشم هایم را روی هم گذاشتم تا از ته دل از خدا تشکر کنم به خاطر محمد که زندگیم بود و خدا دوباره زندگیم را به من بازگردانده بود. محمد فشار خفیفی به هایم داد و پرسید. خسته شدی؟ چشم را باز کردم و نگاهش کردم. نه، داشتم فکر می کردم. رویش را برگرداند و برای یک لحظه نگاه من در هم گره خورد. دوباره دلم نمی فقط بگویم. دوست داشتم فریاد بزنم که دوستش دارم رویم را برگرداندم خورشید داشت غروب میکرد و به نظر می‌آمد جاده در انتها به قلب خورشید می رسد اما غروب دیگر برای من قمگین نبود به قشنگی طلوع شاد بود و زنده من دوباره زنده شده بودم فکر کردم این جاده به کجا می رود انگار مستقیم تا دل خورشید پیش میرفت و به آسمان وصل می میشد. آرام صدایش زدم. محمد جونه: کجا میری؟ رویش را برگرداند. دستم را فشرد و گفت: اونجا که قولش رو خیلی وقت پیش بهت داده بودم. با خنده اضافه کرد: تا بدونی نامردهام قولشون یادشون میمونه. فکر کن به یادت میاد. به ذهنم فشار می آوردم ولی چیزی به یادم نمی آمد. یادت نیست؟ عیبی مرفت. پرسان نگاهش کردم و او شمرده و آرام گفت. دالان بهشت. و لبخندی گرم صورتش را پوشاند بی اختیار زمان و مکان فراموشم شد. از جا پریدم. لحظه ای به گردنش آویختم و گونه را بوسیدم در حالی که از شعف و شادی آرزو کردم آن لحظه تا ابد طول بکشد و آن هیچ هیچگاه تمام نشود. بعد از سالها انتظار دوباره دستهایم دور بازویش حلقه شد و سرم با آرامشی بی نهایت به شانه تکیه کرد و به رو خیره شدم دلم میخواست با صدایی که به گوش تمام دنیا برسد فریاد بزنم تا مطمئن شوم خواب نیستم و باور میکردم این منم خوشبختترین زن دنیا که در تاریک و روشن جدی که به آسمان وصل میشود در حالی که احساس میکنم خود بهشت را در کنار دارم همراه نیمه دیگر وجودم به دالان بهشت میرم ارزش وصل نداند مگر آزردهٔ هجر مانده آسوده به خسبت چا به منزل برسد